اشهدو الا اله ایلا الله اشهدو الا اله ایلا الله اشهدو الا اله ایلا الله خب رو که شین و شو با رو جدا کنیم. بعضا میگه اشهدو اشهدو نه اشهدو حالا بگذاریم بعضا همزم نمیگه میگه هدو شهدو نه اشهدو نونه در لام اتقام میشه الله الله إلهها إلا الله يا بار دیگه بخونید اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله آفرین لام الله درش میشه الا الله هي اخرهم تلفظ بشه اشهد ان لا اله إلا الله اشهد ان لا اله إلا الله